امایش حسن روحانی در مشهد 22 خداد 1392 سلام ساعت 5 عصر جمعه به وقت تهران این پادکست در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بنو علی حقوق بشر در ایران امروز 23 خرداد 92 15 ساعت مانده به انتخابات این ویژه برنامه همین انتخابات رهبر ایران هنوز آیت الله سید علی خامنه ای و من کامبیز حسینی هستم ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ما آقایون خیلی همچین غیر رسمی شاید به گوش شما رسیده باشه ولی در این برنامه خیلی همچین رسمی خبری رسمی به سمع شما میرسه که به زودی قراره به نظر شما برسه از کجا شروع کنیم؟ آ آه, آه این یادتونه بله بالاخره پس از تکاپوی فراوان و گذشتن از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرودمواج این دریای طوفانخیز توانستیم که یک بار دیگر با برنامه تلویزیونی تنز طنز تل... سیاسی تلویزیونی در کنار تو لنگرف کنیم بادبان برچینیم پارو بناهیم سکان رها کنیم و به خلوت لنگرگاهتان در آییم پلیتیک نام برنامه جدید است که پس از تحلیف رئیس جمهور جدید و در بازی سیاسی جدید ایران زمین نوک حمله بازی خواهد کرد آن هم با شکل و شمایلی جدیدتر و در راستای پارازی این برنامه که یکی دو هفته دیگر حال و نشیمن و پذیرایی شما را میتره کند تاریخ دقیقش به زودی یعنی همین امروز فردا در صفحه فیسبوک کامبیز و حسینی که خود بنده باشم اعلام میشود کل همون اجمعین ملت تا پولیتیک بیاید اجالتا امروز انتخابات با جگر بر سر سیاست مداران خود فریاد بزنید که دیگه بست دیگه پولیتیک بی پولیتیک وا بدینسون و, بدین و بدانسون ملت ایران مردم ایران هیچکس هر کس حرفم دیگر رو نفهمید کم فهمید و بحث و جدل بر این که من رأی میدم تو رأی نمیدی پس رأی بده با من تو من تحریم تو تحریم چند ست بار حالا که رسید به ست تا ما میزنیم 300 تا 300 ست تا دسمال آبی بردار شرمنده منظورت همون بنفشه بنفشیه بنفش که برات نون نمیشه آب نمیشه واصفات تنبون نمیشه بببب پس نمیشه رنگ نمیدم چرا نمیدی؟ باشه میدم کی گفت بدی؟ آقا چرا همه گیجن شعر میگن حرف تو حرف هیچکی هم که گوش نمیده امروز روز هر هرکی بهت غور میزنه گرگر کنون گرگرشم یه جنسه چه جنسی؟ اینجوری ها چه جوری ها؟ گوش کن گوش بابا, بابا. انتخاباتی انتصاباتی که قرار بود که قرار است بدون هزینه و همچین خیلی یواش یواش و نرم نرم سر و تهش هم بیاورده شود به ناگه یک رنگ سبز که چرض کنم بنفشی بر آن پاشیده شد و قشر متوسط رو به بالا و رو به پایین که تحصیل میکند حالش خوب است آیفون دارد فیسبوک لایک میزند تگ توییت بلد است مشروب پلم شده می خورد. از خواب برابم بیدار شد که نکنه یکی داره حقمو میخوره من جا بمونم پس جان نمان هرچند دیر اما یک جنبی و یک جوشی بر همین قش بر همان قش در یک روز مانده به انتخابات انتصابات وارد شده و ری میدهم رای میدهم ورد زبان دکتر مهندس های آکسفورد رفته به اضافه صادق زیبا کلام شده که چنش سید چرانش سید تکان بده تکان بخور مگه نمی بینیم من, من نمی بینم. خب کوری تو! به خدا نه چه غلطی می آقا چرا فشت میدی؟ کسافر رعی بده؟ آقا من بیخیال باشه چرا بد و بیرا میگی؟ من بد و بیرا آقا چرا چه... همین الان شما من میزدی؟ که برام رعی بده؟ غلط میکنی؟ دمکراسی ها لدیم؟ من تو... چشم. چشم. چشم من چی کار کنم الان؟ مناظره ندیدی؟ ندیدم حمین دیگه خاک با... آقا فوش نده من حالم خوب نیست قات میزنم مثل همین کامپیوتر اپل قات میزن من, من, من, من میگم نره تو میگی بدوش خب شما ندوش ولی بدوش یعنی ندوش ولی بدوش ولی بدوش ولی بدوش ولی, بدوش ولی ندوش ولی چی میگه این پسره چی میگی تو من چی میگم این چی میگه آقا آقا من گیجم با هر حرف میزنم یا شعر میگه یا اینجوری یه چیزایی پشت به پشت. قطار قطار ردیف ردیف به اون میده که از شما چه بنهون من یکی که زدم گاراژ خاموش خاموشم من پس بذا روشنت کنم. بفرما بفرما! الگسه. اگه نبودی تو آنلاین پای تیوی تو آن تایم بشیت بگم همه ی دنه مناظره برات بس پسر جان شما بزن این من خاموش الان روشن کن بفرما مناظره دارم برات مناظره ی سوم بدون شهر بدون هر کلامی بیار بالا انجزه رو پسر جان مناظره ی سوم دکتر میفرمات که این شما میگی درست که ایشون میگن درست وقتی شما اینو گفتید من چی گفتم شما دارم دنبال دبیرستی ولش کن امکان نداره از این دو طرفه کسی سود ببره بس. به کلی سری بود کدام سایت افشا کرد اگه بخواد با این عصبانیت و این داد و بیداد کردن سکان کشور رو به دست بگیره خدا رحم کنه به این کشور آیا اولا این صحیح هست یا نه بگر است ما چیزی که برای من سوالم تمام بشه امید. بعضی گمان میکنن که اگر ما به تحریم کنندگان یه لبخندی بزنیم دم کت خدا رو ببینیم مسئله حل میشه برنامه‌ای که مبناش این سنده که میگن میگین مجلس هفتم تصدیق کرد و ابلاغ کرد اگر اطلاعات دیگه‌تونم مثل این اخبار ثومی باشی که واویلاست زمان شما جستبای اگر... نشده؟ به نظامم اعتقاد دارم به ولایت فقیه اعتقاد قلبی و صمیمانه دارم به قانون اساسی پایبند هستم زمانه که شما با میتران قبی می‌خوردید ما تو جبهه موشک‌های میراجی میتران می‌خوردیم کار بد مصلحتان است که مطلق من هیچ نقطه قوتی ندارم الا ملت ایران پاییم جواب آقای اونو بدیم؟ بل همش جویده جویده میشه دو تا حکم جل برای آقای حاشمی اومد در دوره آقای خاتمی این بود که من اینو میگم زعفی دیکلماس حتما یه سلیغه فردی بوده بین حق و باطل راه رفتن معنیش میان ردی و دوری از افراد و تفرید نیست آیا واقعا ما رومون میشه تو این کشور بیایم بگیم که ما هنوز اصلاح طلبیم من جزوه افرادی هستم که حقوق خوندم من سرهنگ نیستم من حقوقدان هستم من سرهنگ نیستم من سرهنگ نیستم شنواندگان عزیز حالا شما خودت غذابت کن اگه مردی اگر هم زنی که اصلا حقی نداری تو مملکت هیچ هیچی قضاوت نمیتونی بکنی اصلا قاضی نمیتونی بشی شرمنده ولی طبق آخرین گزارش های رسیده به اتاق خبر این برنامه عمو قرزی رو ولش رضای اگه این دفعه قبول نشه مامانش گفته میره معتاد میشه اونم هیچ تمومه میره پیش حداد حد حداد فکر کنیم رفت بستری بشه برای سری مشکلات بازی پرورویو ترامادول و اینا رو اعلام کنیم ما رفتیم شما خوش باشید بازی نکرده سم امتیاز حساس گرفت رفت جام جهانی خوبهای مملکت موند جلیلی و سلام طبقه في غازنبور روحانی حقوقدان نظر اتاق خبر در ساعت 5 عصر این حاضرین همه حاضرین اعلام کنیم نظر اعلام موزه در ساعت 5 عصر اعلام موزه میکنه نظر اتاق خبر در ساعت 5 عصر موزه رسمی در ساعت 5 این است که شما همگی جماعتی بروید و به آقای ت... رای بدهید پس از انتخاب کاندیدای مورد نظر در ساعت 5 عصر گلستان شدن ایران را در چهار سال تضمینی گارانتی وارانتی و اینا می کند بعده ما فردا صبح ساعت هشت سر چاره ولی اصلاً. یه ذره بالاتر سر کاخ آره همونی سر کاخ آره دکتر همون سر کاخ بیا لگی گپی می زنیم یه قبعه می خوریم برای ردیفش می همون حدود هشت هشت شروع با اینا آره غربانت آره دیگه همون هشت آره چاکر غربانت دکتر جان دکتر چه بدم خدمتتون Ammer از اهم اخبار خیلی جدی هفته این که کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران این هفته با انتشار بیانیه‌ای گفت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مقامات ایران باید به سانسور روزنامه ها و ویب سایت های خبری، دستگیری زندانیان سیاسی و محدود کردن شدید فضای کار روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران به سر می‌برند خاتمه بده. کمپین همچنین با خبرنگارهای غربی که می‌خواستن برن ایران صحبت کرده، چهار نفرشون گفتن که ویزا نگرفتن و گفتن که خیلی دیگه هم گفتن که رفتن ببینن قبلا در مورد ایران چی نوشتن، خوششون نمی اومده از سابقه خبرنگاری اونا ویزا ندادن. خبرنگار جماعت میخواسته بیاد ایران، رفتن خوندن ببینن یارو. اگه مثلا یه وقتی معقودی یک،, یک خبری، یه چیزی منتشر کرده که آقای اون خوششون نمی اومده ویزا ندادن. دیگه بابا همه چیزو شما مهندسی کردین. حالا چرا میترسین که خبرنگارا بیان از نمایشگاه مهندسی شما گزر، مثلا انتخابات بود اسمش عوض کنم مثلا نمایشگاه بین دنیا. بعد به حال آدمی که جروغ خودشم باور نکنه شم این از اساتید دانشگاه علم و سنت با دختران زهرا رهنورد و میر حسین موسوی دید میر حسین موسوی گفتم بابا دیدار کردن این همون دانشگاهیه که به احمدی بای بای درس میداد و این سه نفر همون سه نفری هستن که نزدیک سی ماهه که در حبس خانگی هستن سی ماه ملت و اسم بردن ازشون ممنوعه و کسی هم نمیگه که این کار غیرقانونی تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه ما هم که هر وقت اسمشو میاریم یکی گروهی میگن ازلا تلبین نمیاریم میگن مجاهد سلطنت طلبین اینه وضعیت الان ممنوعه خب خبر دیگه این که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران فشار روی اعضای خانواده های کارکنان رادیو فردا افشا شد ملت یارو اونجا توی رادیو فردا کار را میکنه خانوادهش توی ایران می‌گیرن میگن که یارو چرا داره اونجا کار میکنه آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا گفت که در حداقل نه مورد جداگانه نیروهای امنیتی اعضای خانواده‌های کارکنان رادیو فردا رو را در تهران احضار کردن بازجویی کردن ازشون خواستن که به اقوام روزنامه‌نگار خودشون بگن که یا ارتباط هرفهی خودشون رو با رادیو فردا غذ کنند و یا به صورت پنهانی با سازمان های امنیتی ایران همکاری کنند مدیر رادیو فردا همه با تایید این خبر گفت که برای معموران گمنام مقادیر سنگ پای قذوین سفارش داده که به زودی به دستشون میرسه نگرن نا... روکه نیست که آقا به شوشتر نزن گردن مسگری آقای گمنام خبرگزاری فارس ملت که تحریریش در زیرزمین بخش عملیاتی مردم آزاری های ولایی در یکی از مراکز قصفی سپاه در تهران است، یک بار دیگه نبوغ خودش رو در حد زدن اعداد و ارقام انتخاباتی به رخ رهبر مهندس و کلن نظام مهندسی نظام که شید و گفت میزان مشارکت مردم 74 درصد است خبرگزاری فارس همچنین گفت که انتخابات دو مرحلهی خواهد بود و جلیلی و قالیباف میروند مرحله دوم سردار, سرد... سردار سردبیر فارس همچنین گفت که عدد دقیق میزان رأی ها را هم دارند و دارن روی اعشارش الان کار میکنن و حتما امسال هم چند ساعت قبل از شمارش آرا اعلامش میکنن ما هم اینجا از همین تریبون همین الان پشت این میکروفون اعلام میکنیم که همه اتفاقات روزای آینده رو پیش بینی میکنیم برای شما و به اطلاع شما میرسیم که هرچی اینا گفتن درسته همون جوری میشه هرچی چی فارس گفت با فوتوشاپ بی فوتوشاپ عملی حاضرین خبر خوب داریم ایران ایران که جم... تیم ملی فوتبال ایران چهار تا بلوم زد خیلی هم اروپا بازی کرد دمشون گم دستشون در نکنه کولر هم میزنه میره جام جهانی ببین کی گفتم یکی بره ببین آ کارلوس کیروش خسته نباشید دیگه از طرف ملت چرا که در حد مورینیو الان داره عمل میکنه بریم دنیا رو سیاه و صفید تقسیم کنیم ببینیم چی میشه رسیدیم به خوب بعد زشت شخصیت خوب این هفته با رأی شما محمد رضا عارف است که یکی از معدود نامزدهای بود که در جریان مناظره های انتخابی از حقوق ملت به حقوق شهروندی حرف زد و با کنارگیریش از انتخابات نشون داد که به کار گروهی اعتقاد داره کار گروهی ملت کاری که ما ایرونی‌ها همه همه من جمله خود بنده ما خیلی واردیم توش خیلی واردیم و موفقیم در این کار گروهی ما ایرونی‌ها مثلا کارهای مثل کشتی مردان بزن برداری و این حرف ها با خیلی واردیون توش اما عارف نشون داد که میشه به خاطر هدف جمعی از منافع شخصی و جاه طلبی هایی که یه جورایی دست و پای آدم میبنده و چشاش آدم دیگه فوکس نیست از اینا میشه گذشت میشه گذشت از این چیزها آرف اینو نشون داد از معدود نامزدهای ریاست جمهوری آیا که تحصیل کرده دوپنگی بعد از انقلابی داخل سپاه مدرک بگیر نیست و عکس جوونیاش مثل عکس میلیون ها نفر دیگه است وقتی هم شب میره دنبال همسرش که ببر خونه ببر دنبالش وقتی خانم وارد ماشین میشه بهش میگه سلام عزیزم ما خودمون دیدیم میگه سلام عزیزم نه سلام هاج خانوم مثلا یا یا سلام مادر بچه ها از این ادا اصولها از این ادا اصولها نداره یه سلام عزیزم عارف انتخاب این هفته به عنوان شخصیت خوب از طرف شما برای اینکه شما و ما رو تحت تاثیر قرار داد با منش و رفتار فروتنانه ای که از خودش نشون داد ایشون دست خالی اومد ولی با دست پر رفت شاید هیچ کس تا ته این انتخابات تا بعد از اینکه مردم رأی بدن یا ندن یا محله اول بشه یا دوم بشه بالاخره گیر جمهور میشن گیره. تا تعین انتخابات شاید هیچ کس به اندازه عارف دست پر نره از این انتخابات بیرون اونقدر که ایشون با خودش برداشت و رفت محمد رضا عارف ملت اما شخصیت بد این هفته حیدر مسلحی وزیر اطلاعات کشور است، کلاً اگه شما وزیر اطلاعات هر کشوری هستی همین که وزیر اطلاعاتی کلاً شخصیت بدی هستی کی میره یه جوریه کی میره وزیر اطلاعات بشه فرقم نمیکنه تو مثلا وزیر سی ای باشی وزیر سی نداریم که فرقم نمیکنه که شما مثلا رئیس سی باشی یا کاگبه یا اطلاعات ایران کی میره وزیر اطلاعات بشه اداره موزمار بازی این حرفا ولی مصله این هفته به این علت شخصیت بد نیست که وزیر اطلاعاته دلائل دیگه ای داریم براش ایشون در جلسه شورای نگهبان که برای رد صلاحیت تشکیل میشه بلند میشه میره اونجا جلسه شورای نگهبان جلسه گشته که ملت رد صلاحیتش تایید نکنه که رد صلاحیت کنه و ایشون بلند شده رفته اونجا با چند هم معاوناش و اعضای شورای نگهبان تهدید کرده اعضای شورای و کلی هم هشدار که الا و بلا رفسنجانی رو رد صلاحیت کنین حالا رفزنجانی خودش داستان ما هم حالا زیاد چیز نیستیم عاشق سینه چاک داستان نیستیم ولی حالا ایشون آی مسلحی از کی و کدوم بیت معمولیت داشته رو من نمیدونم شما هم اتمالا نمیدونیم ولی اینا هم که من دارم به میگم که آی مسلحی رفته اونجا که رفزنجانی رو رد سلایت کنه خود رفزنجانی گفته یعنی ایشون خودش گفته ایشون چرا اینا رو گفته که به ما و شما ثابت کنه که چه چجوری زیرابش خورده و کی زیرابشو زده مصلحی هی hey, در مصلحی شخصت بعد این هفته است به خاطر این نشون داد همیشه جایی هست که نباید باشه کار نداره جز تهدید کردن از سر تا پای ملت یه جوری نشون داد سالی که نکوست از بهارش پیدا سؤادمی که حتی به شورای نگهوان هم اعتماد نداشته باشه که دستورت آقا رو با جان و دل انجام بده چه شورای نگهبانی این شورای نگهبان که یارو تا خرخره تو کار کردن حق و حقوق ملت جون ملت که قربونه قطعا ازش در عذاب مصلحی که مصلحات نمیفهمه اصلح نیست و کارش نسول بلكی به مصلخ بردن آدم هاست با یک درجه ارفاق شخصیت بده این هفته در ساعت 5 است شخصیت زشت این هفته کسی نیست جز خودش خود سحابش جناب مستطاب مولاشان و مقتدایشان حاج سید علی آهای خامنه‌ای ولایت فقیه ف... امام آمد رهبر معظم کبیر انقلاب اسلامی این هفته ما رو دست خالی نذاشت و با اینکه قبلا خواسته بود سکه مشارکت مردم رو به نام خودش و مشروعیت دادن به خودش ضرب کنه پاش رو فراتر گذاشت و گفت ممکنه بعضی‌ها نخوان حالا به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنن اما از کشور میخوان حمایت کنن اونها هم باید بیان پای صندوق حتی کسانی که حامی نظام نیستند به خاطر کشور بیان رأی بدن ایشون گفته اینو شما اگه مثلا حامی نظام هم نیستی مثلا خانم مریم رجوی، آقای رضا پهلوی، شما اگر حامی این نظام هم نیستید، تش بیا رأی بدید چون من میخوام که شما رأی بدید. کسانی که حامی نظام نیستن بیان برن به جلیلی تو رأی بدن. یعنی مثلا من بگم آخ خامنه‌ای با اینکه این برنامه حامی تو نیست، ولی بیا از فردا تو برنامه به ما کمک کن. این برنامه جایی تلویزیونی پلیتیک داریم راه می‌اندازیم، نیاز به آدم داریم. بیا کمک کن. رو بیا کمک کن. که نمیتونی بنویسی و اجرا کنی ولی میتونی ویدیو دانلود کنی که این کارو میتونی میکنی آیه آیه خامنه ای جان قربونت برم الهی شخصیت زشتیتو چون حرفایی میزنی که نشون میده انگار تو این مملکت زندگی نمیکنی نشون میده حتی به خوابا و ها و اسمهای زیبا و پرمعنایی که برای مردم وجود دارم احترام نمیذاری نشون میده که تو وقتی میبینی کسی ترم خورد نمیکنه برای اون چیزی که در در دنبالشی یعنی مشروعیت مشروعیت الان کلته مشروعیت همش مش مشروع میپری و اصلا سراغ ایرانی بودن و نباید باید کردن و ایرانی رو به حال خودش بذار آه خامنه ای مطمئن باش به خودت احترام بیشتری میذاری مبارکت باشه یا انتخاباتی تو دیگه شوی درست کردیم مبارکت باشه میبینی که ما هم, هم, هفته ما هم تو هر هفته که میبینیم کجا میذاریم تو برمنمون اینجا اللهم انی اسالو که یک رهبر پرو رویا پرداز که معنی کلماتی که از دهانش به بیرون پرتاب میشه رو نمیدونه اگه از من بدتون میاد بیاین به من رعی بدین برو بابا بچه پرو حرف آخر این هفته راجب شماست من تو این برنامه خیلی راجب دقدقه های خودم حرف میزنم همیشه موازمم گوشم رو زمین ایران بمونه تا تپش قلب اکثریت و فریاد اقلیت های مختلفی رو که بهشون زلب میشه بشنوم و صدا رو به صدا برسونم تا بقیه هم گوش کنم بدونم که آقایت مملکت این روزا چی میکشه اما در این برنامه حرف آخر راجب خودم نیست بلکه راجب شماست کسانی که از هر فرصتی در این فضای انتخاباتی استفاده کردند و حرفی رو زدن که چهار سال جز نجواهای درگوشی کسی از کسی نشیده کسی از کسی ندیده و انگاری که نبود و نیست و نخواهد بود اما بود قوی هم بود و شنیده شده تا الان وقتی در برنامه های مختلف هزاران هزار نفر فریاد زدن که زندانی سیاسی آزاد باید گردن به این فکر نمی که همین فردا زندانیان سیاسی حال آزاد می شن. اینش انقدری مهم نبود که خود پیام قضیه مهم بود خود اون پیامی که اون زندانی سیاسی آزاد باید گردت میداد مهمتر از این بود که اون کاندیداه فردا بره رئیس جمهور شه حالا همه زندانی های سیاسی رو هم آزاد کنه که اونم ما میدونیم نمیشه اما مهم این بود که بگن چی میخوان مهم این بود که ملت بگن چی میخوان و گفتن به چی فکر میکنن رویاهاشون چیه و یادشون نرفته ادمایی هستن توی مملکت که یک انتخابات خونین بارش افتاد رو کمرشون رو زندگیشون و چهار سالی است که هر صبح چششون رو به میله های زندان باز کنن نه پشت میز درس کلاس درس نه در دانشگاه یا تحریریه روزنامه نه در هر جای دیگری که همه بودنشون از زندگی رو معنا دار میکرد. حرف آخر این هفته در مورد آدم که از هر روزنهی استفاده می که خاری بشن توی چش مستبد و نشون بدن که نه چهار سال قبل، نه چهار تا چهار سال قبلش رو هم فراموش. نکردن. و اینکه یک سرکوب پر ادعای چماغ آلود گاز انبوری هیچ تغییری در ارادهشون به وجود نیورده و میلشون رو برای تغییر کم اشتها نکرده وقتی در ساری و مشد و تهران و جای دیگه کشور این فریادهای آزادی زندانیان و دیگه حرفایی که برمیگشت به حقوق مردم و احترام به اونها شنیده می شود و شنیده میشه کسی دیگه به یک نفری فکر نمی که همه یه بحانش برای رفتن به اون جمع ها بوده اون کاندیدایی که قرار رئیس جمهور بشه مهم اینه که اونجا تو اون جمع ها چی گفته میشه و کی اونها رو می شنبه. شاید دیگه ملت به این فکر نمی که دارن تغازه های رو می که حالا بخوان بعد از انتخابات براورده بشه اما به این فکر میکردن که نشون بدن شبها خوابشون گره میخوره یه جایی به فکر آدمهای بزرگی که به ظلم گفتن نه به شاهی کردن پادشاه گفتن نه به ارعاب مفتی و به دشنه داروغه گفتند نه به حراس از مهندسی انتخابات گفتند نه به خبرگزاری فارس و کیهان عددساز و با شعور مردم بازی کن گفتند نه و گفتند نه به همه کسانی که میخواستن چار سال پیش فراموش بشه. و یه دفتر دیگه باز بشه گفتند نه و اومدن توی همین روزا تو همین روزا تو خیابونا و نشون دادن که هر وقت این دفتر باز بشه از همون صفحه ای باز میشه که چهار سال پیش همه کسایی که امید تولید کردند، نشان دادند، بیشمارند، میدونند چی میخوان، به آدمها و حرمتها و حریمهاشون احترام میذارند و کلاهشون رو بر میدارند برای هرچی آدم باشرفه، موضوع، حرف، آخره، این هفته ما هستند این داستان بودن شما و اینکه از این فرصت و فضای انتخاباتی استفاده کردید و حرفتون رو زدید برای من به امثال من که به هر دلیلی ایران نیستیم در ایران زندگی نمیکنیم بسیار بسیار بسیار قابل احترامه. وقتی به صورت مردد اما مصمه بربراچه ان نگاه میکنم که در عکس ها و ویدیو که جای مختلف کشور می رسند هیچی نمیتونم بگم جز اینکه ما و شما با این امیدا زنده هستیم دیگه. همین امیده ما را زنده داره با این روزنه ها حالا شما بگو به نفش سبز نمیشه تو این مملکت و اینکه هر چهار سال یه بار مردم را با یه رنگی رنگ میکنن و از این حرف ها. ولی وقتی رأی اولی ها میان تو خیابون و هنوز با فرایند دموکراسی خواهی قهر نکردن این خودش امیدیه که پویایی جامعه رو میشه تمام کسانی که من از نزدیک میشنستم میدونن که من آدم اهل انف آلوینان نیستم و این هفته به علت تمام حضورتان و حرفهایی که در کمپینهای انتخاباتی به گوش آقایان رساندید کلاه رو یک بار دیگه از سر برمی دارم هرچند یه ذره شاکی از نحوه برخورد دو گروه رعی دهنده و رعی ندهنده با هم و عدبیاتی که در نقد همدیگه به کار برده شده در این روزها ولی در کل بدانید و آگاه باشید ملت که تمام شعارها و حرفهایی که در این کمپینهای انتخاباتی زده شد زده می شود رو فقط من و شما پای کامپیوتر تو خیابون نشتیدیم آقاشونم شنیده و هر مرگ بر دکتاتوری یه لرزه خفیف ریشتری بهش وارد کرده درود بر شما که حرکت رو برماندن پویایی رو بر انفعال ترجیح دادید هرچند که می دانستید فصل آخر داستان قهرمان شما شاید پیروز نشه در کشوری که در اون نفس کشیدن مشکل شده این روزها باز کردن روزنه هایی که نفس کشیدن ما به اون بستگی داره و نباید ببندیمش قنیمته و لازم حالا کی این امید رو میشه ترجمه کرد به تغییرات اساسی و تغییر نگاه حکومت به مردم اشخاص رو دیگه من نمیدونم کاشکی میدونستم کاش این بود برنامه این هفته در ساعت 5 عصر ملت این برنامه محصولی بود از کمپین بلال مل حقوق بشر در ایران و کمپین به عنوان حسن ختم برنامه میخواد که شما بدونید برنامه این هفته دو قسمت بود این قسمت اولشه قسمت دومش دو, دو روز دیگه یعنی روز اعلام نتایج انتخابات میاد بیرون و اینکه هر کی می‌خواد رأی بده بده هر کی می‌خواد رأی نده نده فقط فوش خواهر مادر ندین به هم جون مادرتون تا شنبه همین هفته و پنج عصر دیگه سرتون بالا گور بابای افسردگی بابا